افران الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلحه <الحبو> دلالله رب العالمین و صلال الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین و طالرین البعثونین و خود اخیه بحث که در پنجین بود و توضیحاتی که در روایاتی که در پنجین داریم چون در خلال بحث هایی که شده این جمله در خود کتاب مغنیز تابوس و بعد مغنیزی در بهارو در خلال بحث هایی که شده یکی از ادله رو که در صحت اینکه این علم جایزه همین روایات لا و ازلشون یا منتزه رجار قرارات اقرب اغرب هر کس نا این ازدواج در قمر در اغرب یا سفر حالا در همین درواس سفرا هم بهش اضافه شده پس این معلوم میشه که نظر در نجوم جایزه به الله خب انسان که هرکسی میتونه قضا و قرار در اقرب یا این باید با آشنایی داشته با اندونه شد سوال بوده خب جواب دادم که این مقدار از نجوم حرام نیست این جواب کلیدیه این مقدار از نجوم که شما ستاره ها رو بشناسید حتی از مجموعه آیات و روایات تعیید بود درمورد که بحث آیات رو برام در دست بگیرین یا فکر نمی‌کنم راحتیش این بحث بعدی چون. پس از آیات و روایات و علامات نو به نجوم یحثید ادعا از واسه روایات هم خوبه از آیات و روایات میاد که به اصطلاح قص در نظر در نجوم به این معنا که ستارگان به شانس بعد و قرب و نزدیکی و حجم و مواد تشکیل دهنده اونها و نور و اونها و مسافت اونها اینا کوش نداره مشکل نداره بلکه همه شناخت بر حضرت الهی میکنه و تشریح هم شده به این معنا و کما اینکه اذه هم باز به بعضی از آیات برای به این مطلب مثل نظر به که نجوم توالعی سقی یک نگاهی کرد و یعنی این معناشیه که از راه حس تاریگان ها من فکر میکنم این آیه بعدی معنای دیگه ای داشته یعنی به صادقیه الله انسان خودش ناریزه به آسون نگاه میکنه. آسونه که من مریضم خودش قبل که باعثی بوده نگاه کنه. وجدانش تو خودش نگه ندارد. نباید ظاهر آیه انجیب باشه که خودش هر تعلقی از حال خودش خبر نداشته با آسون که ناریز، او من مریضه. خودم خب مریضه. اول خودش وجدان کجاست وجدانیه که مسئله مرد کجاست وجدانیه. این احتمالا نظر نظر تنفلی نجوم یک عرف اون زمان چون بابنه که از مراکز تنجین در زمان قربوده یه باشه دیدن بعض از علمای احل میشن نجوم یعنی به علف ها نگاه کرد چون در زمان شاید تعدلی نجوم با علف شرفتی داره چون در زمان عرب اون گیاهی که سرد میشه ریشه در نظر نظر نجم میکنم و شاید من نجم از شجای شد از شده هم در الرحمان. نجم در اونجا علف های ندارن شجر اونهای کریچه دارن این در زبان عربی نجم و نجوم به معنای علف های ریشه که ظاهرم اینم نجمی دارن یه نگاه کرد به علفا گفت، گفتن در زمین با آسمون ندارن به زمین به به نگاه. دارن به علف نگاه کردن به نظر نشاد شوخی موازن نیست که خب واضه هست معنای عجیقری است من فکر میکنم هازه فبروریم علا ترتیب این که واقعا ظاهرشون باشه نگاه کرد به نجوم روی تفکر رو تفکر اونها مثلا اون حال سالم بوده گفته این نجوم سالم کنم یک ساعت دیگه بشو بذاریم بیا بریم بیرون درش گفت نمیام بیرون ندار نگذارن چون مثلا نگاه کرد گفتیم مثلا این ستاره از نمی کنه شما که من دو ساعته مریض بشن. من اگه بیام بیرون بد مریض بشم چون نمی من اوزر بخاطر همین بله حالا اوزر یا غیر نوشته شده این مثل من که از من ابداع بنده بیز. به ذهن من میاد همین مطلب باشه این نظر نظر الا طبق قاعده اولیه انسان از خودش خبر که با آسمون نگاه کنم با من مریضم با آسمان نگاه کنم با من سلیمم این خیلی افتدارش خیلیه حرف عجیب غریبی میاد احتمالا نظر نظر نظر بود پس علا تقدیر این که این مطلب هم به سای دیال آیاتو نگاه ما تأیی اینکه ستارگان هم مثل زمینه که از مظاهر قدرت خدا هستن و دارای اصرای هستن تکمینا مثل زمین مثلا گیاهان درختها آب زمین خارک مثلا هر داره آثار خاص خودش کوهستان هر جایی برای خودش آثار داره تکمیم داره حساب پیشتان باید ستارگان هم هم اینطور که هستند سیارگانی که هستن چه حالا نه که دورن نزدیکن پاصله هایی دوری نوری که دارن نوع نوری که دارن این در این که این اجمالا مطلع هست این نمیشه این کنه اینم این دوان حرام باشی این علم علمه این از داری غرمت و حلیت خارجه این تقریمه شنافت تقریمه این وقتی به این حرفا نداره پس این روایت الان تقدیر صحتشن رفتی نداره دانستان این که قمر در خودم برج برجه هر ربه چون قمر رو هم مثل خرشید بروج من بورت بروج به منطقتل اون منطقه ما بین 23 درجه و تقریبا نیم نیم کمتر مدار جنوبی از استحاب پایین و 23 درجه و همون مقدارن مزار شمالی که به اصطلاق خرشی در تیه سال از این دو مقدار بیشتر نمیره میل هرزم شمالی و میل هرزم جنوبی میل هرزم شمالی جنوبی هرزم مثلا در که 23 و 27 درجه حالا میگن تازیه کم تا 25 درد چون کم شده قبلا بیشتر بوده چون اینم به خاطر اینکه وقتی که خورشید مرکز نگاه بکنیم زمین که دور می اون می‌چرخه یک دایره وهمی که حالا بعضی اون دایرهنگه فلکی بهش گفتن این دایره وهمی را یه مثل این دایره باشه این, این دور کتاب رو اون دایره اورکیلن در وسط دایره باشه زمین اینطور که مثلا قطب شمال بالا باشه قطب پایین باشه, باشه, باشه, باشه اینطوری دور تو این دایره نمی‌چرخه زمین مایل میچرخه. میالانش هم 23 درجه این میالانی که هست 23 و این اینجوری میچرخه در این حال این, این طوری یعنی به صورت مایل که در نقشه های زمین دیدیم زمین رو کج کجی گذاشتن مقدار کجیش هم اگر یه خط مستقیم بگیریم 23 درجه رو خورده زمین به این صورت مایل میچرخه چون مایل میچرخه خواهی نخواهی اون مقداری که با این مدار دور کره خودشیده این از 23 میاد تا به پایین تا میاد به صرف باز با تا به 23. یعنی این چون میاد اینجا اینجا که میدستم مثلا فرص کنیم 23 بالاست این, با این از 23 پایین ما بین مترسط این استلاحا منطقه بروج بشین این 12 که 12 ستاره از حمل و و اصطلاح اسمش چیه دیگه جوزا رو نمیدونم فرص سرطان و که تیر بله میزان میزان حالا ترک که عالم اعربه. خلون برج قوس هستیم خورشید الان برژ هستی. خورشی دارم تو برج قوس همین دوازده برجی رو که برای خورشید تصور کردن برای ماه هم تصور کرده. پس دو روز خورده دو روز هشت ساعت هم. در ماه در یکی از این برج‌هاست. خورشید نه. خورشید به اصطلاح مجموعا در یک سال. خورشید در یک سال این دوازده برج رو به اصطلاح خودشون یعنی از 23 شمالی تا باز برگرد به 23 شمالی این 23 شماده اصطلاحا انقلاب شفی میگن 23 جنوبی هم انقلاب سیفی میگن انقلاب سیفی و شفی جا به جا گفت از فرم که این هست این, این اصلاح محاسبات هست این روسته یه بحث دیگری که مرموم مجلسی هم این بحث داره تو این بحث به ها من دیگه باردنشم در این کتاب تاریخ نجوم اسلامی هم که از مستشعین معدب و منصفی ایفان هم داره خلاصش اینه که احتمالا این کلمه و قمر قدرناه و منازل حتی آزه کرد نا قدیم این منازل همون منازل بیسته اشکانه یه که در نجوم آمده نباشه و یه توضیحی داره که حالا اگر در خلال بحثاتی شما انصافا اگر امرو دارمدار رویت به دنیا قطعا نبادی منازل اونا باشه این سر این که طبق رویت هم بعضی شما مثلا اول ماه که پران رو 14 می قرائت تا 13 ها واقع اشاره شده دروسی این معنا حالا اشتاق می‌داره که جاش اینجا نیست و اصلا نمی‌خاستن ولی نگاهم واسه بحث بشه در از اینکه که این چه داره حالا اون آیه مبارکه و کله اون فلقه کی است که که این فلک هم اشاره به هم فلک مستطیلی یونانی بشه اون هم روشن نیست راست مجلسی هم داشت حالا نشون می مستشقه فهمین قبل از مستشقه مجلسون بفهمید که این اصطلاحات نجومی با اصطلاحات قرآنی فرق میکنه اثرات دیگریه یک آثار خوبی داره که واقعا در علوم القرآن و معارف اسلامی خیلی موثر دیگه من خب جو دستش اینجا نیست من فقط اشاره میکنم حالا می‌خاستن برها مراجعه کن پس بحث در این بود که والقمر و فلق شناختن قمر و این باطل نیست حرام نیست آقایان مثل مرحوم و سالینام اون البته نه این نجوم حرامه الا این چند تا شناختن قمر در که در آمده. اینجوری فهمیدند مثلا ستاره شمالی قطب شمالی یک چند تا یا بعضی از آنون یا این رواست هم بود تو گفتن نه شما نجوم حرامه چرا چون نجوم از زینا حال ناظرین چون نجوم زینت هم دو همون مقدار هم یحتزون تلبر رو بر همون مقدار تا آیات آناده همون مقدار آیات قبول میکنی زینت دیگه هیچ اثر نداره بقیهش هم حرامه تلاتش خب یاد این مقداری در در نیست که خیلی روشن نباشه و با فهم اسلامی هم نمی ساد یه مقدار که تکفیرهای زمانی بود ما لهم یه حرفا بسید کسی این ها رو بخونست کافر حالا حال من وازون بحث نشتم هم مقدار اینشالله اشاره اجمالی کافیه اینها من علمی اشاره خاصی نداره و بار مثلا فکر فقی بر نمی علم, علم دیگون واقعیه داره اصلا شما اعتقاد به اون یعنی اون تابع علم و تجربه و آثار علمی فیزیکی و شیمی و خواستی که داره و تحلیل تجزیه نورشو حسابای خاص خودش داره اون بحث خاص خودشو هستن اما این که شما بیارید بگیین بله حالا که اینطوره پس اینا خالق بشرن هست اینا خالق کره زمین هست اون دروغه اون از به ما مروحیست اون بحث عقایدیست اما علمش نه این یک بحث که استدلال به این روایات برای که شناختن قمر در اغرب جایزه انصافا قمر در عقرب باشه در اوص باشه در فرض اینه که میزان باشه سمبل باشه سرطان هیچ شلوشی شلو نذانه که خود قمر در اغرب هیچ شلوشی در کجا باشه ستارگان دیگه تونا برای زوحل اینا هم تاثیر میکنن دیگه در اغرب باشه نباشه اونا فرقی نمیکنه هیچ کدام از اینها بحث کفر نمیاره اختصاص بین یه بحث دیگه که در بحث نکاح آسان مطرح میشه که این حکم ثابتی یا نه چون این حکم چون از کردم معیار این حکم همین رواهت محمد بن همرانه چیزه دیگه اینه افضل روشنی و یه توضیح کافی ارز کردیم که روات محمد بن همران در اون نسخه اولیه شکی منصافر او تزدوجه فلقه مرافل احرام در بعض از متون اولیش من تزم بچه یک بحث سافره و توضیحات میشه عرض کردیم با شباهدی که ما الان در اختیار داریم انصافاً سافره سافره نشد که من توضیحش دادم اما تزم از متون قدیم ما آمده همین. یه بحث راجع به سافره را سهلاً رد کردیم در بحث و فلق یه بحث متعارضی سهران دیگه خیلی مطالعه شده سندها اینه دیگران که خب بر فرض رو الاوراق ضعیف باشه سندا قبولش میکنیم به خاطر عمل مشهور اگر این مبنا رو بخواید توضیح بدین چون ارسلان من شرارن این مسئله که عمل مشهور جبران ضعف سند میکنه هم صغرا داره هم کبرا یکی اینکه آیا واقعا شهرت جابر هست یا نه این یه بحثه که من شرارن ارسل اینم از خصایص ماست اهل سنت تو خبرینی رو ندارن بله توی بحث تو آرز دارن که اگر یه خبر مشروع شد شغرت ترجیح دیارن اما شهرت فتوایی ممکن به خود بشه این رو ندارن این بحث ندارن این فقط ما داریم و این هم تاریخی هم داره غیر از بحث اصولی ریشه تاریخی هم داره که جاش اینجا نیست پس یه بحث کبرویست که جاش اینجا نیست الان هم, هم واضح شمیش. یه بحث صغربی هم ما داریم چون من عرض کردم حده از موارد اینا آمدن گفتن مشهور عمل کردن وقتی مراجعه می نکردن عمل خیال کردن لذا این بحث رو همیشه یک نقطه کوروی داره که در اصول میگی یک نقطه سقوروی داره که در بحث فرم می گی کوراش یک جا،, صغرا یک جا حالا در ما نحنفی می رو تفریح می آیا سقورا داره یا نه ارز کردیم در کتاب صدوق از امام حادی هم نرسده و ما عرض کردیم توضیحش کافی ارز کردیم سرش اینه ما مرحله صدور روایات داریم مرحله انتقال از روایات به فتاوا داریم که این از دوران غیبت تقریبا نخصان غیبت سغرا شروع شد دیگه مرحله پتوا داریم و بعد مرحله تفریعات داریم فهر ما اون که میتونه در حجید در شهرت تأثیر بکنه تو اون مرحله انتقالیه مرحله انتقالی. یعنی فرض معیار مرحله روایات و سال سال زمان امام صادق قرار دیگم مرحله انتقالی حدود 300ه. 300 دویست و تا سیستر دویست و این -300 اون مرحله وسط داره این مرحله الان در فقه ما ابهام داره اینجش مهمه مشکل کار رو اگر میخواییم تحقیق بکنید پیروهشی بکنید تنقیل بکنید, عربا، بکنید، اینجا اینجاشه. چون ما معتقدیم این اعتقال اگر روشن بشه این مبنای مشهور ازا این مسئله که آیا شهر جابر هست نه ما اعرض کردیم با شواهد با نگاه کنیم حکم کلی نداره مثل قضیه خارجیه نمونه مثل قضیه حقیقیه نیست حکم کلی بدیم که جابر هست یا جابر نیست؟ نیست. چرا؟ چون از این فتره ما بین 150 چون الان در دنیای الکلدش میخواد آمارها مستقیم و روشن باشه اجمالی نباشه این فتره 150 تا 300 که عمه متأخر ما هستن اصطلاح در این فتره تولید علم ما کمه به احتمال قوی اینها عرضه برمه علمه شده اگر ثابت بشه که در این فتره خب الزور جانان راه اگه یه سیرت باشه بر یه مثلا تا پطای مثلا شیخ طذوق مثلا که خیلی ضعیفه که بهرغم مرغم اختراع داشتن یه الزور شلون هر روزه راز میشه هر سال تکرار میشه این فصله الان کار مشکل همان که شما داری که در اون وقت هم خیلی موثره در حقیقت به نظر ما اون لغت اساسیه اون بیت طله قصید قول شاعرها اون بیت این مال 150 تا 30 که در این مدت اهمه چه کردن کرده چون مخصوصا ما مذاهب مختلف داریم مثلا واقفیها ها رجوع به روایات نکرد اصلا به اهمه متاخر مراجعه نکنیم، چون اعتقاد نداشت واقفی مخصوص. محسوس چرا اما واقفی ها نه اعتقاد داشته این اعتقاد الان برای ما خیلی منعکس نشده این مشکل کار ما مهم‌ترین دلیل برای انعکاس اون چیه که مثلا صفر رضا بیاد به همون راه عمل بکنه کافی داره عمل بکنه شیخ صدوق عمل بکنه شیخ مفید عمل بکنه شه شیخ... ببینید این عملهای بعدی به نظر ما مرآه هستند طریقا بر اون 3 تا 850 سال روش درود نو کیفیت قانون و اوایل اخلاق و هوای آن در کجا خاص اینو اولا گفتن شیخ طوسی شیخ مفید فتو داد فلسفی دلیل وجج اون نکته فرمیه که اونا باید اثبات بکنم این فتابا بتونه یک ای بشه تاریخی بشه برای اون 150 سال این که ما میگیم بعضی از موارد میشه نمیشه ما لگیم از که ما وقتی تجریه شوارد بکنیم این 150 سال رو روشن بکنه برای ما اگر روشن کرد خیلی خوبه آدم بیشتر چشت شد نورسن رو تعبز ما اثر لاقل 80 درصد معتعبد هارمون ها دنبال تعقلی و به نتیجه رسیدیم 20 درصد نمگیرشیم با این به تعبد هستیم اما 30 درصد اونچی به تعافل حمله شوید اینا بیشتر چشمه رو بستند اسم تعقل تعبد ما گفتیم چشمه رو باز میکنیم اون چشمه رو یعنی خودی باز رو ایجاد بکنید چه دایی در چشمه بندید که میشه چشمه باز کرد چرا با چشمه بسته باید بشین بی چرا چرا در اختیار ما, چرا رو؟ چرا ما, ما با روشن و اینکه کرمال کرمال دستیز این تو تا این 150 سال تقریبا ما کورمال کرمال حالا باید این نحلش بکنیم در ما در این 150 سال روایت صدیب هست از امام حادی که فرموند منتظر وجه و القناع رو فلعه بد نیست اما چون فیلی سند روشن این آزار تحلیب نزیاد است و انفراد شیخ صدوق از سخود شیخ صدوق هم در کتاب مشهورش نیورده بعد نیست یعنی اونی, اونی که در پسه 150 سال یه مقداری کار رو روشن بکنه همین عبارتی روایت که در ایون آمده بعد در کتاب بعدی مثل خورزا که کاملا مغیده مثل فلسفی مرحوم کلینی مرحوم کلینی فقط مشکلشی که در کتاب روزه آورده ایشان رو. این روایت. با کنیشون ایشون تمام روایتون این جنگو کلا تو روزه آورده شاید مبنای ایشان بوده تمام این روایتی که ما از ایشون در نجوم مخوندیم تو روزه آورده ایشون این با سر بگه این خیلی تحنی در روایت حساب نمیشت مرحوم صدوق آورده فتحابش شده مرحوم شیخ مفید فتوات از شهره توسی و بعد این به این حساب ما چه افتاده یعنی انصافش اگر بنابشه اینجا شهرت جابه هست به نظر من اینجا شهرت کافی هست برای جابه بوده این به لحاظ قرینه خارجی حالا یه میشه بشه یه بشه. و اما به لحاظ خود خبر از کردیم ما نصفی که از روایت داریم قیلت کتاب فقیه در سندش ابراهیم ابن محمد ابن همران هست چون اون مشکل داره توسیق مستده پسر ایشان توسیق مستده بله سند صدوق به خود محمد ابن همران خوبه لیکن مثلا آقای و عده گفتن محمد ابن همران در طریقه صدوق مراد نهدیه اگر این باشه ثابت نیست. اگر این باشه سند ایشان تا محمد ابن همران خوبه نه نهدیهه پدرش نمیشند. تا محمد بن حمروان خوبن اشغال ابراهیمی نیست، اما محمد بن حمروان خود همراه نمیشند. پدر رو نمیشند. پسر رو میشند، پدر رو نمیشند. اما اگر آماده این گفتن نیست، محمد بن حمروان هم سرعت آیا؟ یعنی در آن روابطی که ما داریم، کلش آن عبی ابی الله است. اگر بگیم حالا هر دو، مثلاً بگیم مراد حمروان برادر اداره است. اگر این حرف گفت رو میشه رواس بر طریق صدوق با این به اصطلاح عثروفینه یک کاریش کرد مثلا بگیم مراد از محمد بن احمران همون پسر زر... پسر درادر زراغه و انعلی هم هست در نسخ دیگه ما احنوی نیست همین نسخه درسته و همران در پدر ایشان جزء اعلام تاریخ فن جزء بزرگان جزء حواری نزد سجاد چه اسلام ما وصادق صلوات الله سلام این راجع به این حدیث به لحاظ سندی پس یک نوع استرامی در حدیث هست به لحاظ اندردی بله خب شاید در نسخه ایشون هر دو بوده بله ایشون دو متن میاره اون چون ارز کردن چون هجیت خبر را قبول میکردن دیگه با هر دو قبول میکردن شاید دو طریق در باره شاید دو تا باشه شاید واقعا یه دواید در دو مفتر که ایشون دیده هر دوش دو متن دیده در هرحال اینشون داره چه دیگه داره که یه حدیث واجد است. 30 درایت کنم یه هر سه درست فاسو ام این داره صدوق داره و این توضیح از کنم. این راجع به خود حدیث. پس حدیث یک اشکال نمایی خیلی جمله داره. بلکه مثلا رو مبنای صدوق او نم باز وسل پینه بکنیم که مراد نحدی نباشه ن باشه و مراد او نباید باشه چی باشه چه ن باشه. و با اون مقدمات میشه سال رواز رو هم درست کن. اما زوریه نه خیلی ساده ساده. نیست ابتداعا صافه صاف نیست این راجع این مسئله به اصطدا سند ما به مناسبتی که از بحث خارج شدیم خود محمد ابن همران رو مورد بررسی قرار دادیم و توضیحات مفصلی رو راجع به این جهد ارز کردیم ارز کردیم چون من بیشتر نظرم اون نواسه کلی که در رجال یا در فهر سوحان کار رو احل کردی ما یک محور روایت داریم این محاور رو باید کنیم یک محور روایت داریم یک محور کتب رجال اهل سنت محور روایت و کتب رجال دارن کتب رجال رو از روایات گرفتن من این رو چند باره عرض کردم این خوب دفعه کنید این کاری نبودی که ما انجام دادیم اهل سنت هم انجام دادن. حتی مثلا قصد الغابه یا استیعاب کتبی که در صحابه هست اینا هم اما از روایات گرفتن این خیلی مهمه یعنی فلان آقا مثلا جزء اصحابه سوال اینه کی ببین آقا هست هستن توی یه روایتی فلان فلان نهرکه که این آقا گفت من به رسول ها اینجور فرم دارم تسامنش هست و جز اصحابه خب در اینجا طبیعتا اشخال اصحابی خب سنگون روانه کشه ایک آدم جعالی اتکارش بخ چطور ما موکنیم اصل اوجودیش اصباد بکنیم معاصر ما خدا رحمتشون رایه عسکریه کتاب میشه مهو خمسون صحابی مختلف 150 صحابی مختلف این در حقیقت نه این که آبود 150 تاره اصباد بکنی ایکی ایکی ای که ای ای ای شباه تاریخی ندارن ایشون آمدن پس این کتاب تاریخ تبری مقابلشون گذاشتن هر روایتی که درش سیفه سیفه نعمر تمیمی چون اینشون متن به وضع هست هر روایت درو سید بن عمره تنیوریه قصه ای از زمان پیغمبر مکرک ایشون استخراج شده مثلا صحیفه بن کلان فلان عمره که اینا ها گفت که و غالبا این شخصیت از کیشون بساز اشیاء خودشون تمیما یه اشیای هست اسموسه که اینو پیغمبر اینو گفت ایشون خواه اشیان گفت این سید بن عمره جعاله پس این صحابی ها جریه جع ساختگی ایشون راهشین یعنی این دو گلی که ایشون مردم فهمه نه این به سه سفرم تمام میشه مثلا روایاتی که اسم این افراد توش اومده از سیرنند این روایات فقط صحیح نقل کرده و این افراد به عنوان صاحب یعنی لیست دو صفحه ای می بینی راویشون صحیحه پس تمام اینا صحیحه چون راهی که اونا دارن همینه اما این اختصاص به صحیح نداره الحمدلله اهل و ضاع و کذاب و اینها زیاد دارن چون نیست که فقط صحیح دوامری توش باشه اون یکیشه حالا نیم خواهرم که حتی همون باشه سر زعیف باشه. البته در خود کتب معتبرشون مثل همین اصطباب ناسید میگه مثلا فلانی میگه رواه و ابو موسا به سر ضعیف و در یک نسخ مثلا یه نسخ حسن یه نسخ جعفره یه نسخ حسینه. بعضی اوله هر دور یا هر سر رو جز اصطحابه نداشته. اصلا اگر اونام تعلیم بشه اونام همین مشکل رو دارن. نه که صرف ما داریم. همین که الان مثلا برداشتن نوشتند کتاب مروون شهر در اصحاب امام صادق 333 سال از مرده افسر 70 سال تقریباً کمتر از 4000 تا این 4000 تا ابن عقده اسمرده ببینید ما اولین کسی که اسمرده مجموعه رباط از امام صادق 4000 تا ابن عقده است وفاتشان سال 333 نه اینکه علم، ابن عقده علم یقوف داشته یا کتاب رجال داشته اصلا تصریح کرده حلم فلان فلان مثلا زیل ابن حسن قال قال ابو عبدالله. پس این زیل ابن حسن ساده چهار هزار روایت دیده، سنداش استخراج کرده راوی اخیر از امام صادق بوده اصاب این را همینطوری مثلا اصاب امیر المومنی پس این 300 نفر 500 نفر برای هر کدوم یک روایت آورده به یکی اتفاق کرده و به صرف وجود اتفاق کرده خدا سرا قرآن قرآن امام علی پس این اوج از اصحاب علی یعنی اوج از اصحاب ما حسنی اصحاب آجوز... این اصحاب بوده یک کتاب تاریخی دستش نبوده دقت کردین یک کتابی و کلا علمی خوف سینه به سینه باشه دستش نبوده خب اینجا این سوال نیست که گاهی روایتی چون توش هست و توش هست مجهول گوشت خب وقتی اصل روایت ثابت نشود این که این آقا هم اصلا وجود خارجی هم داره ثابت نیشونه این که حالا جد اصابه صادقه حالا تأکیر ما این به حساب علم خودمون میگیم شاید یک واقعیت داشته باشه و الا به حساب علمی که ما داریم خب واقعا این خیلی اون زیر های فکری ما روش کار باشیم ابن عقوده 4000 نفر رو استخراج ده این نه 4000 روایت برده گفته پس این آقا جزء روایات امام صادق علیه السلام و این رو هم توضیح بدن این جزء استاندارد علمی اون زمان بوده مگه خب ما الان قبول ندریم خب این قابل مناقشه است دیگه اون زمان جزء استاندارد علمی بوده این قبول داشتن هم سنی ها هم شیعا هم زیدیا شما الان ممکن است تخریب بکنه اما اون زمان که این راه رو که این جزء رواته البته بعد هم خودشون باز عاملان این سوالی سرش ذریق این به سند این روشن نیست اما این متعارف علمیشون این بوده حالا این هم خیلی به نظر من مشکل نداره چون ما می توانیم بررسی بکنیم برای ما مشکل کجاست ما مراس های مقدره نداریم چند تا از کردن تا این بحثم در میان شیعه هم نداریم در میان خود زیری هم نداریم آقای صدبت که خود کرد من نامه ای بشنیم خودم چون 15 سال پیش که از میراثای ابن اوقه اگه خطی چیزی هست مثلا ایشون بهال ما هیچ شان از میراثه ابن اوقه بخویم آقا خودشان دارن جاوردی باشه زیدی باشه زیدی که بود به نظر بله چون خود ابن اوقه به نظر زیدی جاوردی خود چون یمنی ها زیدی صالحی هستن تو جاوردی جازیه تندروتن اند اصلا صالحی ها مثلا واجبه. اول دومیه دومی که تعریفم میکنن جاوردی نه اونها لعن میکنن از یه طرازم من به خود آیت سلزادیمون حوسی که اخیراً فوت کرد، پدران حوسیا که الان انقلابی در ایران دارن، من نامه‌ای نوشتم که عالم تعالیً ترازو اولی این اخیر بود. قبل از ایشون ما این منجدی من ایشون ما هیچ چیز چیزی ما از میراث ابن نقد هیچ نداریم. تو امید ما به ایران بود که مثلا اونجا چون وگان چی دردش پیدا بشه. لکن ما الان راهی که از ابن نقد و اندوزی یه نوع ربط متناسق در اهل سنت یه مقداری در کتاب الغیبه نعمانی انصافا زیاد داریم نسبتا و متاسفانه تو احادیث ضعیف و مجهول و احتمالا ما می‌گیم خیلی از ما زیدی باشن ما نمیشناسیم نه اینکه واقعا ضعیف باشه ما نمیشناسیم حد علم ما اینه من حد الواقع نمیگم این خوب دقت بکنید ما در جریان به دنبال حد واقع نیستیم چون واقعا نمیتونیم حد الواقع بفهمیم از عده از علمای اهل سنت نظرش درست است میگه من در یک راهی میگم ضعیف خبرش قبول نیست ممکن این جزء فکریسین باشه الان در اعلا درجات بهش مشمول منتنبه به نظام باشه حد به ایمان ما اینه من میگم ضعیف نگید در واقع ضعیفه ممکنه جزء او الله باشه در درجات عالی بهشت باشه هر دیگه من صحبت میکنم کنم میگم من بیشتری که ظاهرا از ربات کوفی که زیدی بودن نقل کردن ما علم نداریم اشتباه نشه منصفانه باید اظهارت بکنم ما خیلی این و اونها نداریم اونا رو آشنایی باشون نداریم که اینا چی هستن که کلمکا خوب دقت بفرمایید ببین من حالا که گفتم اینجا ام بگم اگر مرحوم شیخ مفید در ارشاد اگر بگم چون واقعا خیلی بعیده از شأن مرحوم شیخ مفید همچی کاری بکنه اگر شیخ مفید در ارشاد عبارتی که در باره اصحاب امام از این کتاب ابن اوده خیلی واقعا از شأن شیخ بعیدام بر متوجه شون ابن اودی الان معلوم شد هزار روایت صریح و ظریف هستن مگه و غیر مذکور اون راوی اخیر انس صادق این چه استخراج کرده خدا رحمت کنه استاد مؤلف اینو من استخراج کردم 8000 هزار 4000 خورده. خورده من اضافه کردم اونم هم همینطور یعنی اضافه ایشون هم همینطوره صریح و ظریف و... هم اینجاست مگه مجموعه از ما مصادر حالا ان فلان ان جعفر محمد حالا درست نا درستش فدای اگه من 10 هزارو خورده من اینش مشکل نیست شما الان بیزی بنش فهمیدین روش فهمید. اما مرحوم شیخ مفتی میگه قدر قذره با اربع الاف منسقات انه. این کلمه منسقات اضافه کرده اگر این اربع الاف ایشون گفته عبارت ابن عقده است که خودمون اصلا ضعیف این حرف کلام چون مجبول و ضعیف تو ایشون اضافه بر اون عدد کلمه منسقات رو اضافه کرده خوب دقت بکنید این مبناهی که هر که از جز اصحاب ما مساده و اکرابه جلال آمده میشه این مستندش اینه که برای شما گوشن شد مستندش کار هزار اسم بردن ابن نیست. چون چون شده اصحاب ابن اوغده نه نشد چون اختصاص به امام سالق هم برای اصحاب ابن اوغده یه تعریفی داشته اینطور من ر اصلا اصحاب اهل الومیت 300 سال رو یاد آورده اون راوی عتیر رو را اسمش چی بود 300 نفر اسمش بود من رواه هر حق من رواه حسین من رواه حسن بود آنه صادق کار گذار کار این بوده این توش توصیق نداره تعجب نکنید از عبارت ابن توصیق در نمیاد داخل عبارت شیخ مفتیه است من اگر من اگر میگم تو واقعا تصور مقام جلال شیخ مفید که بگیم خیلی ما که بچه طلبیم یا هزبار مفید خب کار ابن که توصیل مفید استخراج به اما این برموم شیخ مفید بیاد این تلمه یک کلمه است ما تمام ازده زیادی از وچاری هم گفتیم چون جز اصحاب ما صاد و ملتفه قده اوزن چون ابن اوغده چار زاخر خب قیره اندر به قیره ایمان ساده کرد این نیست علت علت این کلمه شیخ موفی در ارشاد وقت عرب و عرب از سآلات کلمه منت سقاط اضافه شده در شیخ موفی که اگر واقعا من نسبت نیم میتونم بدم اگر واقعا شیخ موفی این مطلب رو به استناد کتاب ابن اوغده نوشتن اگر انصافا خیلی سنگید تو توی واسه اون خود ما هم الان بسوغ نداریم که شیعه از خودی این گرفتن اربعتالاف من از ثقات سق... این ثقاتش سقاطشو... ها بید. اربعتالاف من مشکلی موشکلی زرگه ما بید همتیه من کرده اون تارزاتاش مهمی اون خدمت خیلی اهمیت نداره. اون قسمت دوبارش این از خیلی اهمیت داره که انصافا برای ما هم مشكله پس محور دومی که من از بحث خارج شدیم چون که مثل مبحث تماشا شده مثلا محور سوم فهارس اصحاب ماست اصلا فهارس سنيه ها ندارن این اختصاصا مبحث فهارس اصلاح اختصاصا در اختيار اصحاب ماست سننيات این بحث فهارس رو ندارن و فهارس از روايات گرفته نشده اشتباه نشده فهارست و اجازه گرفته شده از فهاره که تو فهرست معروف ما داریم فهرست شیف توسی فهرست نجاشی و تا حدی هم فهرست ابو غالب زراری که الان در هم آخر رسالش موجود واقعا فهرست بسیار نفیسیه با عنوان برسال لیست یعنی بقوله عربا سبت سبتشان به اسماع کتب سبت با سایه سه نقطه و ب و ت سبت یعنی لیست به یک موزیما عربی انگلیسی ی یا قائمه یه لیست داده به اسماء کتوبی که در اختیار خودش بوده به نوبه خودش اجازه داده اونم فهرست خوبی است انصافا اون فهرست ابو غالب زراره فهرست خوبی بود کنه خیلی مفصل نیست حدود 100 کتاب شاد داشته باشه کمتر شد به هر حال اونم فهرست خوبی من خیلی با اون انس دارم و انصافا مفید اون فهرست حالا این مطلب که روشن شد من یک نتیجه به ارزو در محور روایات در کتب اربعه مرحوم استاد نشان یک روایت باهیلم از محمد نهان را نهیل نده مرادیشون اینه یعنی با این عنوان نده راسته این مطلبیشون بود. یک روایت با عنوان محمد نهان را نهدی داریم در کتب عربه اینم راسته در کتاب فقیل فقط آمده از خیرم آنگ گفتن که در این نسخه نویشی در نسخه خطی نیست و در کافی و تحضیب و استفسار اون روایت آمده توش نهدی نیست. پس در میشه گفت که در کل کتب عربعه فقط محمد ابن همرانه. این بخش روایه در غیر کتب عربعه هم اونجایی که گفتم با کامپیوتر نگاه کنم این برنامه درست باشه و نباشه من نهی نیست یکی از من فلان به محمد ابن محمرانه نرگن داری این عنوان رو در کتب روایه یک مورد هم در غیر کتب عربعه داری این را بله همین روایت ابراهیم ابن محمد ابن همران آمده بین بی عنوان در خیفت در رساله ابو غالب توی بعضی از نسخش ابراهیم رو پسر محمد ابن همران نعیم به این معنا هم داریم به این معنا در کتب عربعه داریم ابراهیم ابن محمد ابن همران بگیم چون از خاندان زراره یعنی پسر اموی پدرشه مثلا میشناسه به این عنوان داریم اما به اون هنابینی که ا در کتاب رجال که یه وقتا تموم شد در کتاب رجالی که ما داریم در کتاب رجال برقی که جز رجال اصلی ما این محمد بن همران مولا شیبان داریم و محمد بن همران مولا بنی نهد داریم همین مردان به نظر من یه سری دقیقه این از همه داریم اما تو و چون روایات از، یعنی رجال از رواید ریاسه شده تو مولا بنی نهد تو رواید نداریم اما ایشون نوشته مولا بنی نهر این راجع به رجال مرحوم برگی در رجال شیخ توصی در کشیان که نظره در رجال شیخ توصی یک محمد ابن همران نعیم داریم یک محمد ابن همران مولا آل فه ولیس ابن هرین اینطور داریم گفتن این سیش مولا آل نهره که مثل رجال برگی بشه یک محمد نهمران همران هم داریم سه بار که ایک نکاتی در رجال اینجا نمخوام بگم اون چیزی که الان بر ما ابهام داره حالا غیر از اینکه مولا آلفه کسی غیر از ایشون نگفته اونی که بره ما ابهام داره اینه که در رجال اینجوری محمد نهمران همران مولا آلفه و لیسه ابن اعیم اینجا لیسه داره محمد ابن همران نحوی هم داره که ابو جعفر کوفی هم اون, اون هم داره در رجال مرحوم ابو داوود و رحمت الله دا. رجال حسن عریم داود هللی که مؤاصر مرحوم هللی است و تقریبا ت벌ن رجال واس کتاب خلاصه علامه و رجال ایشان ت벌ن رجال ایشون نوشته محمد ابن همران نحوی و به ابن ابنایا جرح یعنی رجال شیخ این زهد رو تو نهی آورده اون مولا بنی فهرن نهو هم اصلا نه آورده این, این منشاء شد این رجال ابن داوود منشاء شد که اول بعدی عملا گفتم ما یک ابن عینه رو نهی داریم حالا چرا منشاء شد چون مرحوم ابن داوود در مقدمه می که نسخه ای که من از رجال شیخ دارم به خط شیخه نتیزی چی شد از قرن هفتون به بعد که محمد بن همران نهدی پسر اعین نیست این در کتاب رجال شیخ آمده از تو رجال شیخ در زیر بنی فهر آمده ولی از ابن حید اما در ابن داود اینجور آمده این منشه خرابیه بعدی شد مخصوصا که ایشان مدعی شد نسخه رجال ایشان نسخه رجال شیخه پس حالا که مرحوم نجایشی گفت محمد بن حمران در فهرز گفته پس این پسر ابن عیم نیست. این از کجا؟ از شیخ انتوسی. شیخ توسی از کجا؟ از نسخه ابن داود. تو نسخه فعلی شیخ نیست این مطلب. که ما داری. تو محمد بن حمران نمیشه لیز ابن عیم. ابن داوود نمیشه محمد بن حمران لیز ابن عیم. نقلا از رجال شیخ. هم این سیر سهب با لفت سهبت بگن لذا دیگه الان من از توستری من اون توستری دیگه اصرار که اون نهدی ابن عید نیست دو نفرن برای جامعه رواسی گفت یه نفرن با قول آیشی دهن با قول آیشی دهن با قول آید توستری کم آسرا رو اینقدر این رئی زریده گفت کم آسرا بیه بیه بیه برد کردن ندارد ترده این هم زه قیمش تونتونی شو. اصلا نایب وکیل جهان اله هر چیزی. یکی سرش منظور داشت اساساً که زن زاییده بعد سه ماه بعد خدا هم شده. اله اساساً دوران رشوه قبل ما با چی کجا ولم زقومم؟ قدیمیش هم حال اینه. صد این با مبادی. اون امروز 11 دیگه 11 تجریلی از سادات و با حضور از درسالی باید سادات دیگه اون مقام یا در قوم نه در حرم چبستان نجم خاتم ده همین شبستان امام کنی عموامن طلاب سادران سیاز رو سلام آمد را اون درس مرگز مزیعن مزیعن مرگز چهارمدی. مرگز چهرمانی سی شیلیه چی؟ آقا آقا لقای آف حالا خدا خلاص خلاص این که خیلی من چه تشکیلات رسمی داره یک خاطر دیگه چاشنا خدا من خودش اصل اولی در من که این کنفرانس هم من نمیرم کنفرانس یه دور یه دمای ساده است در که این صفحه <تصفيق> دارم اینجا تو رو بشو محمد اشعیدی 34 از محمد بن مشید 15 تا داره حالا که بهش هم آورده اون تا رو بخستم از بکنم که محمد محمد کتابش